فصل یازده یا بعد از پل بیر حکیم توی خیابان کوچکی که مشرف بر خیابان ساحدی بود هتلی پیدا کردم. بعد از سه روز دیگر دوست نداشتم برای خوابیدن به پورت اورل برگردم. توی این هتل که اسمش فرمیت بود اتاقی گرفتم و از خودم می مشتریهای دیگرش چه کسانی هستند. اتاقی راحت تر از اتاق خیابان ووارت با, با تلفن و حمام. اما این تجملگرایی را مرحون اسکناس هایی بودم که سوریر موقع بیرون آمدن از درمانگاه داد و بعد هم پسشان نگرفت. خودش سرار کرد. حسابی احمق بودم که در نگه داشتن این پول تردید داشتم. به هر حال او بچه صاف و ساده ای نبود. شب که شد؟ تصمیم گرفتم دیگر هیچ وقت به خیابان واورت بر نگردم با خودم چند دست لباس آورده بودم و جعبه مقوایی آبیرنگی که کاغذ های را تویش میگذاشتم، گذاشتم باید خیادم راحت می شد که آنجا هیچ اثری از من واقعی نمانده این فکر نه تنها ناراحتم نمی کرد بلکه به آینده امیدوارم می کرد. از وزنه سنگینی راحت شده بودم. دیر وقت به هتل برمیگشتم. برای شام به رستوران بزرگی میرفتم که بعد از راهپله‌های ایستگاه مترو بود. هنوز اسمش یادم مانده. بوستان پاسی. زیاد شلوغ نبود. بعضی شبها با مدیر آنجا که زنی سبزه بود، با موهای خیلی کوتاه و پیش خدمتش که کت سفید دریا نوردی می پوشید، تنها میشدم هر دفعه امیدوار بودم ژاک مینگو سرژان وارد شود و سمت بار برود درست مثل دو سه نفری که می نشستند و با خانم مدیر حرف میزدند. میزی را انتخاب میکردم کردم که از همه میزها به ورودی نزدیکتر بود اگر می آمد، بلند می شدم و سمتش میرفتم. حرفهایم را از قبل آماده کرده بودم. ما تو میدون پیرامید با هم تصادف کردیم. فقط کافی بود راه رفتنم را ببیند. کفش پاره پانسمان. تازه لکه خون هم روی کتم مانده بود. مسئول پذیرش هتل فرمید با اخم نگاه هم کرده بود. احساس کرده بودم به من بدبین است. بنابراین این کرایه پانزده روز را جلوتر داده بودم اما مدیر بوستان تحت تأثیر پانسمان و خون روی کتم قرار نگرفته بود او یا در محله های شلوختر آدم های زیادی را با سر و وضع من دیده بود کنار بار یک توطی توی قفس زرد و بزرگش بود ده ها سال بعد مجله را ورق می زدم که با آن دوران مربوط می شد. در صفحه آخرش، چشمم به تبلیغات رستوران ها افتاد. یکیشان توجه را جلب کرد. مستان پاسی و توتیش پپر، هر روز هفته باز است. این جمله به ظاهر بیمعنا قلبم را به تبش انداخت. یک شب که خیلی احساس تنهایی می کردم، ترجیح دادم جلوی بار و کنار بقیه بنشینم. احساس کردم دل خانم مدیر، با دیدن کت خونی و پانسمان و لاغریم کباب شده توصیه کرد ویاندوکس بنوشم وقتی در مورد توتی سوال کردم گفت اگر بخاین میتونین یه جام بدین کمی فکر کردم و تا آنجا که ممکن بود شمرده شمرده گفتم من دنبال یه ماشین فیات سبز چمنی میگردم لازم نبود. برای آموزش این جمله مدت زیادی وقت بگذارم. شیوه تکرارش خلاصه‌تر و مفیدتر بود. ماشین فیات سبز چمنی و صدایش تیزتر و محکمتر از من. دوستان پاسی دیگر وجود ندارد. تابستان گذشته یک شب که با تاکسی از بلوار دولسر رد می شدم، به نظرم رسید. جایش را به بانک داده ولی توتی ها خیلی عمر می کنند. شاید این یکی بعد از سی سال توی محله دیگری و لابلای سر و صدای کافه دیگری هنوز جمله ام را تکرار کند بدون که کسی معنایش را واقعاً بفهمد یا گوش کند فقط توتی ها هستند که به گذشته وفادار می مانند.